تنها بودم و ساعت حدود دو بود. مدتی بود که صداهای عجیب و غریب و جالبی از اتاقی که پنجره زیادی به ایوان داشت بلند بود. از دست پسر دانشجوی اسکورت جردن که داشت با دو دختر از گروه کور در مورد زایمان حرف میزد و با التماس از من هم میخواست وارد بحث شوم در رفتم و وارد امارت شدم. اتاق بزرگ پر از آدم بود. یکی از دخترهای زردپوش داشت پیانو میزد و کنار او خانم موشرابی بلندبالایی که عضو گروه رقص و آواز معروفی بود آواز میخواند. خانم مقداری شامپاین خورده بود و یک دفعه هیچ مناسبتی به این نتیجه رسیده بود که همه چیز خیلی غم‌انگیز است و وسط آواز گریه هم میکرد و هر جا وقفهی در آواز بود خانم آن را با هقه هقهای کوتاه و بلندش پر میکرد و بعد با صدای سوپرانوئ لرزانش آواز را از سر میگرفت. عشق از گونههایش سرازیر بود هرچند در راحتی روان نشده بود و ریمل سنگینی که به موهایش زده بود اشک را به شکل جویبار کوچک سیاهی درآورده بود که به کندی به راهش ادامه میداد طوری که به شوخی به او پیشنهاد شد که به خواندن نتهای صورتش آواز بخواند و او با شنیدن این حرف دستهایش را بالا گرفت روی صندلی ولو شد و به خواب مستانه عمیقی فرو رفت دختر بغلدسی هم گفت با مردی که میگه شوهرش دعوا کرده. به دورو برم نگاه کردم. بیشتر زنهایی که مانده بودند داشتن با مردهایی که گفته بودند شوهرشان هستند دعوا میکردن. حتی جمع جردن آن گروه چار نفره اهل ایست اک هم با جر و بحثی که کرده بودند بینشان فاصله افتاده بود. یکی از مردان با شدت و حدت با زن جوان بازیگری حرف می زد و زنش که ابتدا تلاش کرده بود به این وضعیت موقرانه و بی تفاوت بخنده تاب نیاورده و مجبور به حمله از جناهین شده بود و گاهی ناگهان مثل یک افعی خشمگین سر و کلش کنار مرد پیدا می شد و زیر گوشش فس فس می کرد که تو قول دادی؟ البته فقط مردان لجباز نبودند که میلی به رفتن نداشتند. سالان در اشغال دو زوج بود. شوهرها انقدر حشیار بودن که دل آدم را کباب میکرد و زنهای به شدت عصبانی با صدای بلند برای هم درد دل میکردن هر وقت میبینید یه جا داره به من خوش میگذره میگه بریم خونه تو عمرم آدم به این خودخواهی ندیدم ما همیشه اولین مهمونایی هستیم که میریم عین ما یکی از مردها با سر پایین انداخته گفت خوب امشب که جز به آخرین نفراییم ارکست هم نیم ساعت پیش رفت. با اینکه هر دو زن توافق داشتند که این همه بدجنسی دیگر فوق تصور است، قائل به بگو مگوی کوچکی خطب شد و هر دو زن در حالی که لگد می‌پراندند، روی دست به دل شب برده شدند. وقتی در سالن منتظر کلا هم بودم، در کتابخانه باز شد و جردن و گتسبی با هم آمدند بیرون. گتسبی داشت آخرین حرفهایش رو را به جردن می‌زد، اما وقتی چند مهمان برای خداحافظی به سمتش رفتند، آن شروع اشتیاقی که در رفتارش بود به سرعت به رفتاری رسمی تبدیل شد. همراهان جردن یک ریز او را از ایوان صدا می زدند. اما او قدری معطل کرد تا دست بدهد بعد در گوشم زمزمه کرد. همین الان عجیب‌ترین چیز ممکن شنیدم. ما چقدر اون تو بودیم؟ مم... خب حدود یه ساعت. خیلی عجیب بود. اما من قسم خوردم که چیزی نگم و حالا دارم تو رو وسوسه می‌کنم. بعد خمیازه ملیحی توی صورتم کشید. مم... لطفا بیا منو به لطفا بیا منو ببین دفتر راهنمای تلفن به نام خانوم سیگور میآورد اما او همانطور که به سمت در میدوید این کلمات را بلغور کرد و با دست برونزش بای بای شاد و شنگولی کرد و به این همراهانش در آن سمت در ناپدید شد. شرمنده از اینکه در اولین دفعه که آمده بودم آنقدر دیر داشتم مهمانی را ترک میکردم به جمع آخرین مهمانان گتسپی وارد شدم که دور او حلقه زده بودند. میخواستم برایش بگویم که از همان اول که وارد شدم دنبالش گشتم و ازخوایی کنم که در باغ او را نشناختم. گتسپی با خوشرویی گفت آه حرفشم نزن. دیگه بهش فکرم نکن رفیق قدیمی. و دوستانه تر از این حرف دستی بود که برای اطمینان دادن به من روی شانه میکشید. یادت نره فردا ساعت نه صبح قراره با هواپیما ما بپریم. بعد خدمتکارش پشت سر شد و گفت از فیلادلفیا تلفن دارید قربان. خل خوب یه دقیقه دیگه. بهشون بگو الان میام. شب بخیر. آه شب خیر. با تبسم گفت شب خیر. و ناگهان اینطور طور بنظرم رسید که تا دیر وقت ماندن و جزء نفرات آخر بودن معنای خوبی داشت و انگار گتسوی تمام شب همین را میخواست. شب بخیر رفیق قدیمی. شب بخیر. از پله‌ها که پایین رفتم دیدم هنوز شب تمام نشده. 15 متر آن طرفتر از در ده دوازده ماشین با نور بالای چراغ‌هایشان صحنه عجیب و غریب و شلوغی را روشن کرده بودند. یک ماشین کپه نو توی جوی کنار جاده افتاده بود. چپ نکرده بود اما یک چرخش در رفته بود. این ماشین دو دقیقه نمیشد که از گذر ماشین روی خانه گتسپی بیرون آمده بود که بیرون زدگی تیز دیوار باعث در رفتن چرخ شده بود و حالا توجه پنج شش راننده کنجکاو را به خودش جلب کرده بود. چون با ماشین هایشان راه را بند آورده بودند، سر و صداهای گوشخراشی از ماشینهای پشت سر به گوش میرسید که شلوغی صحنه را بیشتر از پیش میکرد. مردی با روپوش بلند گردگیری از آن آهن قراض پایین آمده بود و حالا وسط راه ایستاده بود و شیرین و گیج از ماشین به بیننده ها و از آنها به چرخ نگاه میکرد بعد اینطور توضیح داد که نگاه کنین افتاده تو جوب طوری تعجب کرده بود که حد نداشت من اول همین شکل عجیب تعجب کردنش را به یاد آوردم و بعد خودش را من اول همین شکل عجیب تعجب کردنش را به یاد آوردم و بعد خودش را همان مرد مستی بود که میخ کتابخانه گتسبی شده بود چی شد؟ شانهایش را بالا انداخت و سفت و محکم گفت من هیچی درباره ماشینا نمیدونم خب چی شد؟ زدیم به دیوار؟ مرد اینک جغدی به کل از خودش سلب مسئولیت کرد از من چیزی نپرسید من زیاد از رانندگی سرم نمیشه در واقع هیچ چی سرم نمیشه خب شد دیگه فقط همینو میدونم خب اگه تو رانندگی ناشی هستی نباید شب امتحانش میکردی با اوقات تلخی توضیح داد امتحان نمی نه, نه نه امتحان نمی تماشاچیها ها آج و آج مانده بودن میخواستی خودکشی کنی؟ شانسوردی فقط یه چرخش در رفت آقای نابلد. آقایی که امتحان نمی کردی. متهم گفت، متوجه نیستین؟ من رانندگی نمی کردم. یه نفر دیگه تو ماشینه. در ماشین به آرامی باز شد و شک حاصل از این افشاگری بین هزار به صورت آهی آشکار شد و همه به مرد اینک جغدی حق دادند. جمعی که حالا بدل به جمعیتی شده بود، بی اختیار یک قدم عقب رفت و وقتی در ماشین کامل باز شد، سکوت مرگباری بر فضا حاکم شد. بعد، خیلی آرام و جز به جز، آدم رنگ پریده لقلقوی از آهنگراز بیرون سرید و با کفشهای رقص لق و گندش لخلخ لخ کنن پا کشید به زمین. این روح سرگردان که نور کور کننده ی چشمش را میزد و در سر و صدای سرساماور ماشین ها مات و مبهوت تلو تلو میخورد کمی سر جایش ماند تا بالاخره مرد رو پوش پوش را دید و خیلی آرام از او پرسید چی شده؟ بنزین تموم کردی؟ شش تا انگشت به چرخ کند شده اشاره کرد و گفت نگا کن مرد کمی زل زد به چرخ و بعد بالا را نگاه کرد انگار چرخ از آسمان به زمین افتاده باشد. یک نفر برایش توضیح داد، کنده شده ها. مرد گیج سرش را به تایید تکان داد، اولش حالیم نشد وایستادیم. مکسی کرد، بعد نفس بلندی کشید و سینهش را جلو داد و خیلی قاطع گفت، لطف میکنیم بگیم پمپ بنزین کجاست؟ دست کم دوازده مرد که حال و روز بعضی از آنها بهتر از حال و روز خودش نبود برایش توضیح دادند که چرخ و ماشین دیگر هیچ ارتباط فیزیکی با هم ندارند چند لحظه بعد این پیشنهاد را داد خب عقب عقب میریم بیرون با دنده عقب. آقا جان چرخ در رفته دودل شد و گفت خب حالا امتحانش که ضرر نداره بوخ های گوش خراش به اوج خود رسیده بود که من راهم را کشیدم و از وسط چمن ها رفتم طرف خانه یک بار که به پشت سرم نگاه انداختم قرص ماه را دیدم که سر و صدا و خنده های باق را پشت سر گذاشته بود و بالای خانه می‌درخشید و شب را مثل قبل زیبا کرده بود به نظر می خلعی ناگهانی از پنجره ها و در بزرگ خانه گتسوی به جریان افتاده بود که انزوای بیچون و چرای مرد میزبان را، در حالی که ایستاده روی ایوان یک دستش را برای خداحافظی رسمی بالا گرفته بود، به تصویر می‌کشید با مرور مطالبی که تا اینجا نوشته اینطور به نظر می رسد که وقایه آن سه شب که بینشان هفته ها فاصله بود، کل چیزی بوده که وقتم را به خودش اختصاص داده، اما برعکس این اتفاقات تصادفی در آن تابستان پرمشغله بود که در واقع تا مدت ها بعد هم خیلی کمتر از کارهای شخصی وقتم را گرفته بودند. بیشتر اوقات سرم به کار گرم بود. صبح زود وقتی با عجله از سراشیب سفید پایین دست نیویورک به سمت ساختمان پروبیتی تراست می آفتاب سایم را به سمت غرب می کشید. همه کارمند ها و سفت فروش ها را به اسم کوچک می شناختم و در تاریکی رستوران های پر ازدهام نهار به آنها سوسیس، پوره سیب زمینی و قهوه می خوردم. حتی روابط کوتاه مدتی هم با دختری که در جرسی سیتی زندگی می کرد و در بخش حسابداری کار می کرد پیدا کردم اما برادرش کم کم شروع کرد به چپ چپ نگاه کردن به من و وقتی در ژویی دختر به مرخصی رفت گذاشتم کم کم ماجرا فیصله پیدا کند. بیشتر وقتها شام را در ییل کلاب میخوردم و این بخش مزخرفترین اتفاق روزم بود. بعد به کتابخانه طبقه بالای کلاب می‌رفتم و یک ساعت به طور جدی مباحث سرمایه گذاری و وسیقه ها را می‌خواندم. همیشه چند آدم دعوایی آن دورو بر پرسه میزدند، اما هیچ وقت سر و کارشون به کتابخانه نمی‌افتاد و کتابخانه جای خوبی برای کار کردن بود. بعد اگر هوای شب ملایم بود، قدم زنان از خیابان مدیسن پایین می آمدم، از کنار هتل قدیمی ماریهیل رد می شدم و از خیابان سی به ایستگاه پنسیلوانیا می رفتم. کم کم داشت از نیویورک خوشم می آمد. جوش و خروش و حس ماجراجویی این شهر در شب و رضایتی که با رفت آمد دائم مردها و زنها و ماشینها نصیب چشمهای بیقرار می شد. دوست داشتم از خیابان پنجم بالا بروم و زنان رمانتیک را بین جمعیت کشف کنم و خیال کنم که قرار است چند دقیقه دیگر وارد زندگیشان شوم بدون اینکه کسی چیزی بفهمد یا سرزنشم کند. گاهی در ذهنم آنها را تا دم در آپارتمانشان که گوشه گوشه خیابانها مخفی بود تعقیب میکردم و آنها قبل از اینکه در تاریکی گرم خانهشان محو شوند برمیگشتند و به من لبخند میزدند. گاهی در گرگومیش سهرامیز این کلان شهر احساس تنهایی استراب آوری سراغم هم این احساس تنهایی را در دیگران هم تشخیص می دادن. کارمندان جوان و بدبختی که جلوی ویترینها ول می گشتند تا وقت شام خوردن یک که و تنهایشان در رستوران برسد. کارمندان جوانی که در این تیرگی جانکا لحظه های شب و زندگیشان را می کشتند. ساعت هشت شب. وقتی که در کوچه های تاریک خیابان های چهلون به بالا تاکسی ها در ردیف های پ و آماده رفتن به تئاترها تپ و تپ می کردندند باز هم دلم می گرفت. شبه آدمها بعد از مدتی انتظار در تاکسی به هم تکیه میدادند و صداهایی ترانه می و ققه از شنیدن شوخی‌هایی که به گوش نمیرسد بلند می شد و سیگارهای روشن در داخل تاکسی حلقه های دود درست میکردند تصور میکردم که من هم به سمت شادی میروم و در حال خصوصی آنها شریک هستم و برای همین برایشان آرزوی خیر میکردم. مدتی بود که جردن بیکر را ندیده بودم تا اینکه دوباره در اوایل تابستان پیدایش کردم. اولش خیلی جوش و خروش داشتم که با او این طرف و آن طرف بروم چون او قهرمان گلف بود و همه اسمش را بلد بودند. اما بعد احساسی بیشتر از این به سراغم آمد. عاشق نشده بودم اما نسبت به او یک جور کنجکاوی پرمهر داشتم با آن ظاهر مغرور و خسته‌ای که به دنیا نگاه می‌کرد در واقع داشت چیزی را پنهان میکرد. اغلب ناز و اداها حتی اگر در ابتدا اینطور نباشد عاقبت چیزی را پنهان می‌کند و من سرانجام یک روز فهمیدم موضوع از چه قرار است یک بار که با هم در یک مهمانی خانگی در واریک بودیم جردن ماشین امانتی را با کروک بالا ول کرد زیر باران و بعد هم به کل منکر قضیه شد و من یک یاد داستانی افتادم که از او شنیده بودم همان که آن شب در خانه دیزی یادم نیامده بود در اولین مسابقه بزرگ گلفش جار و جنجالی راه افتاده بود که نزدیک بود به روزنامه ها هم کشیده شود می جردن در مرحله نیمه نهایی توپش را که موقعیت خوبی نداشته جابجا جا کرده کار داشت به رسوایی می کشید اما سراسده ها خوابید یکی از کلکش حرفش را پس گرفت و شاهد دیگر هم گفت که شاید اشتباه کرده باشد. این اتفاق و این نام با هم در ذهن من باقی مانده بودند. جوردن بیکر خیلی غریزی از مردان باهوش و زیرک دوری می و حالا می که دلیلش این است که او جایی که هیچ نوع تخلفی از اصول مورد قبولش وجود نداشته باشد بیشتر احساس امنیت می کند. بی صداقت بی صداقت بود و تحمل اینکه در موضع ضعف قرار بگیرد را نداشت و به دلیل همین بیتاقتی بود که از نوجوانی شروع به نقش بازی کردن کرده بود تا هم بتواند آن لبخند خونسرد و و تغییرآمیزی که به همه دنیا میزد را ادامه بدهد و هم انتظارات جسم ورزیده و قبراغش را برآورده کند برای من فرق چندانی نداشت و هر حال بی صداقتی را برای جنس زن عیب بزرگی نمیدانند. البته کمی ناراحت شدم اما فراموش کردم در همان مهمانی چند روزه بود که درباره طرز رانندگیاش جر و بحث عجیبی کردیم جر و بحث وقتی شروع شد که جوری از بغل چند کارگر رد شد که گلگیر ماشین به دکمه کت یکی از آنها گرفت به اعتراض گفتم راننده مزخرفی هستی یا باید بیشتر حواستو جمع کنی یا اینکه به کل قید رانندگی رو بزنی حواسم هست نه نیست با بیخیالی گفت خب بقیه حواسشون هست این چه ربطی به موضوع داشت گفت خب از سر رام میرن کنار برای تصادف دو نفر لازمه دیگه فرض کن طرف مقابلت هم به بیدقتی خودت باشه امیدوارم اینجوری نشه از آدمای های پرت بدم میاد از تو هم به خاطر همین خوشم میاد چشمای خاکستری و آفتاب خوردهش درست به روبرو خیره شده بود خیلی حساب شده، روابط من را رو تغییر داده بود و درست در همان لحظه، حس کردم، عاشقش هستم. اما من آدم کندی هستم و پر از باید و های درونی که ترمز خواسته هایم را می کشد. می دانستم به طور قد باید اول خودم را از این وضع به هم پیچیده خلاص کنم، هنوز هفته یک نامه برای او می نوشتم که زیرش امضا می کردم دوست نیک و تمام فکر و ذکرم این بود که وقتی تنیس بازی می کند چگونه یک سبیل کمرنگ از عرق روی لب بالایش نقش می بندد حال تصورات نصف نیمهی در کار بود که باید با زرافت و تدبیر از دستش خلاص می شدم هر کس دست کم یک فضیلت مهم برای خودش قائل است و فضیلت من این است که من یکی از معدود آدم های با صداقتی هستم که در عمرم شناختم.